می خانیم انشالله باعون الله و بلطف پروردگار سوره مبارکه ی قافرا که سوره ی قاف سوره مکی هست و از نظر ترتیب جزء اون سوره‌هایی هست که اوائل ناظر شد. 34 چهارمین سوره قرآن مجید هست اما ابتدا مناسبت این سوره را ذکر بکنم خدمت شما ما قبل از این سه سوره یعنی قبل از سوره حجرات سوره فتح و سوره محمد حوامیم را خواندیم در حوامیم بحث بحث چی بود توحید بود که در حاجات و مشکلات خودتون فقط یک الله را صدا بزنید غیر از الله از کسی دیگه حاجت موضوع هفت سور حامیم همون بود و بعد در سوره محمد و فتح و حجرات گوی خاندیم کسانی که توحید را قبول ندارند مشرکند و اشاعه فساد و شرک میکنند با اونها جهاد بکنید جهاد کنید خدا فتحیتون میده بعد از فتح نظم و نسق زندگی را با این اصول زوابط اجرا کنید حال موضوع سوره قاف به بعد قیامت هست تقریباً از سوره قاف تا آخر قرآن مجید اکثراً این مباحث مباحث قیامت هست چرا دوباره موضوع توحید هم تجدید میشه اصل توحید هست و بعد قیامت هست قیامت به بخاطر توحید است. هر کسی توحید را نپذیرفت در قیامت به عذاب گرفتار میشه پس خدای عز و در اون سوره منکرین توحید را فرمود که با انها بجنگید الان در این سوره گویا منکرین معاد و قیامت را می فرماید که اینها هم مثل همون منکرین توحید هستند. در این سوره ها بیشتر دلائلی برای اثبات قیامت زک میشه، خلاص این سوره مبارکه قاف اینه که دو دلیل اولی تفصیلی دومی دو مختصر برای اثبات سوره برای اثبات مدعای سوره یعنی برای اثبات قیامت هست و خدای عز و جل هم در ابتدای سوره زجر و توبیخ باید می برای کفار در آخر سوره تسلی برای رسول الله است در وسط مبحث توحید هم می آید و همچنین تخویف دنیاوی اخروی هم و تبشیر هم در این سوره وجود دارد قاف از حروف مقطعات است که الله اعلم بمراده الله بهتر میداند مراد قاف از اون حروف متشابهات است که لا يعلم تاویلَهُ الا الله قبلا در این مورد بحث شد و المجید خداوند اینجا به قرآن سوگند یاد کرده به قرآن سوگند یاد کرده یعنی قرآن را شاهد گرفته قرآنی که مجید هست مجید یعنی چی؟ یعنی ظلمجد و شرف قرآنی که دارای عظمت و شرف است. خب موضوع جواب قسم چیه؟ قرآن قسم خورده چی چیزی را میخواد اسمات کند؟ از آن جایی که موضوع سوره قیامت هست بعضی قیامت را جواب قسم مقدر کردن یعنی گفتند وَالْقُرْآنِ المجید لتبعثن. قسم به قرآن مجید که شما از قبرها حشر می شوید. از قبرها بیرون کرده می شوید. بلند می شوید. اما بعضی می گویند که چون بحث قرآن هست ابتدا و قرآن دلیل رسالت رسول الله و نبوت رسول الله است لذا بعد از قرآن قرآن خود شاهده که تو پیامبر خدا هستی. قران شایده که تو پیامبر خدا هستی شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله هر دو را مقدر می فرماید وَالقرآن المجید انك لرسول حق وان الساعة لاتیه قسم به این قران که تو رسول به حق خدا هستی فرستاده واقعی خدا هستی و قیامت هم برپا میشه اما خدای تعالی اینجا خطاب می فرماید و سرزنش اون قومی را که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم شک دارد نسبت به قیامت هم شک دارد هر دو شک را خداوند ذکر می فرماید بل عجبا ان منذر منهم بلکه اینها در تعجب هستند در شگفت هستند از اینکه منذری آمده از آنها بیم دهنده و ترساننده ای آمده که از خودشون است می گفتم بیم دهنده باید ملک و فرشته باشد چون که از خودشون بشر است از این در شگفت افتاستند فقال الكافرون هذا شیء عجيب کافران گفته این چیز عجیب هست چه چی چیزی عجیب هست یا اینکه پیغمبر از جانب خدا هست چرا بشر فرستاده و یا اینکه ما بعد عجیب هست عجیب چیه؟ متنا و کنا تراباً آیا ما زمانی که بمیریم و تبدیل به خاک بشیم ذالک رجع بعید این بازگشت بازگشتی هست که بعید از عقله وقتی که می استخوان استخان میشیم تبدیل به خاک و خاکستر بشیم چطور دوباره زنده بشیم؟ این بعید از عقله این در عقل نمی گنجد خداي عز و پاسخ میده، اما در این پاسخ سرزنش اونها را هم خداوان بیان می فرماید پاسخ پروردگار هم پاسخ اقلی هست همین الان که یک انسانی یک انسان رشید و با کمال یک انسان قوی و جوان که تنومند و نیرومند هم هست. این انسان خودش نمیداند که اجزای بدنش از کجا و کجا هستند. همه اجزای بدن من و شما از خاک هست یا نیست. کدوم خاک است؟ خدا میداند که از کدوم خاک است. از های متفاوت دنیا هست. مگر بدن تقویت میشه رشد نما پیدا نمیکنه از غذا؟ از غذایی که از اون بچگی منو شما خوردیم اون زمان دو کیلو سه کیلو بود از اون زمان که غذا خوردیم تا به حال این غذاها از کجا آمده از همین خاک کدوم خاک خدا میدونه کدوم خاک ما برنجی میخوریم که از خاک پاکستان درست میشه گوشتی میخوریم که نمیدونم این گوسفندش از الف و سبزی افغانستان مثلاً می خورد. یا از اون گوشه دنیا ما مثلا سیبی میخوریم که این سیب از اون گوشه دنیا آمده موزش از گوشه دیگر دنیا یا دوایی ما استفاده میکنیم که این دوا بدن را التیام میبخشه این دوا سبب چی میشه؟ سبب تندرستی بدن میشه این دوا سبب تقویت بدن میشه این دوا معلوم نیسته که از بوتهای در افریقا از اونجا گرفته شده، یا از بوته های در آسیا از اونجا گرفته شده، از تمام بدن شما یک سفری که جلوی شما هست، شما همین سفره را مطالعه بکنید. فلی انظر الانسان اولا طعامه، انسان همین طعام خودش را فکر بکند، این طعام از کجا آمده، چگونه آمده، تو این طعام انواع خوراکیها، انواع معکولات، انواع مشروبات، انواع به بخدمت شما میوهها. اینها از گوشه گوشه از خاک های متفاوته دنیا آمده و بدن تو چی شده نشون ما پیدا کرده الا این بدن را خدا میداند این از تکه از کدوم گوشه دنیا است از خدوم خاک دنیا است همون طور که الله ال میداند که بدن از چه اجزایی از خاک دنیا تشکیل شده بدن وقتی متلاشی بشه این بدن را اون هندو سیک بگیرد و این را بسوزاند و این را تبدیل به خاکستر بکند و پودرش بکند و اینها را او به دریاها بریزد به بادها تحویل بداد ذرات هر جا می روند خدا میدوند کجا می روند. خدا عالم هست چرا با این عقل ضعیف ما می خواهیم که وزن بکنیم و بسنجیم باید با وحی الهی که وحی بالاتر و فراتر از عقل است با وحی بسنجیم لذا الله می فرماید قد علمنا ما تنقص الارد من هم ما می دانیم که زمین کم می کند از اینها استخانشون گوشتشون تبدیل به خاک میشه زمین رو می خورد و بخشی از زمین میشه ما میدونیم کجا قرار می گیره اونجا میماند یا به وسیلی ها و سیلابها و اینها میره جای دیگه هر جبر ما میدونیم و عندنا کتاب حفیظ الله میفرمه نزد ما کتابی هست که حفاظت کننده یعنی لوح محفوظ هر چیزی را حفاظت کرده همه چیز سبت و ضبط ذرات توش سبت شده لذا خداون میفرماید اینها با این دلیل میخوان قیامت را تکذیب کنند بلکه ذب بالحق لما جاءهم بلکه در واقع اینها تکذیب کردند حق را وقتی که حق پیششون آمد قرآن فهم فی امر مریج اینها در امر سرگردان هست مریج یعنی مستر سرگردان و بعضی گفتم مریج به معنی فاسد امر فاسد چطور امر فاسد امر سرگردان مشرکین می گفتن قیامت نیست کفار همینو میگن. اما وقتی که دلائل قیامت گفته می شد و در قرآن گفته میشه قیامت اینا می سرگردان می شودند. گاهی با سیغه شک می بله اگر قیامتی باشد ما اونجا خوب خواهد بود پس اینها سرگردان هستند یا در امر فاسدی هستند چون عقیده بدی دارند از این به بعد خداوند دلائل اثبات قیامت را بیان می فرماید یکی از دلائل عمده خلق مخلوقات بزرگ است خدا می فرماید شما به آسمان نگاه کنید شما به زمین نگاه کنید شما به بقیه مخلوقات نگاه کنید اینها را کیا فریده؟ ببین وقتی که خدا میتوند آسمان را با این عظمت خلق کند انسان کوچولو را بهتر میتونه خلق بکند خلق شما سختری از آسمان لذا اولین دلیل که خدا بیان میفرماید اینه که به مخلوقات بزرگ قیاس میکند وقتی که ربی که میتواند مخلوقات بزرگ را بسازد کچک را همچنین دومین دلیل که در ادامه میآید خداوند استدلال میگیرد از نزول باران باران وقتی که میآید زمین مرده زنده میشه یا نه هکذا انسان مرده یک روزی از زمین چی میشه زنده میشه اون خدایی که میتونه زمین مرده را زنده بکند اون خدا میتونه انسان مرده را هم چی بکند زنده بکند به این دلایل توجّه بفرمایید الله می فرماید افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا اینها نگاه نمی به آسمان، فوقهم بالای سرشان هست، کیف بنیناها، چگونه ما اون آسمان را بنا کردیم، و زیناها چگونه ما اون آسمان را آراستی کردیم، زیبا خلقش کردیم، و ما لها من فروج، و چگونه برای اون آسمان هیچ شکافی نیست، هیچ پاریدگی نیست، هیچ سوراخی و پاریدگی ندارد، و بعد از آسمان به زمین نگاه کن والارض مددناها والزمین را ما پهن کردیم گسترده کردیم والقينا فيها رواسيا وما انتقت در ان زمین کوهای را میخای کن در واقع زمین وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ورواندیم در آن زمین از هر نوع تر و تازه انواع گل انواع سبزیجات انواع درخت ها انواع شکوفه ها اینها همه برای فهم هست یعنی yani خداوند این تنوع را ایجاد کرده از این تنوع انسان بفهمد الله تعالی تنوعات را در جای دیگه بیان می فرماید الم تر انزل الم تر ان الله انزل من السماء ماءا آیا رفت که اونجا که خدا میفرماید و من الجبال جذاذن بيدن وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه خداوند میفرماید سبزیجات غله شکوفها کوها حیوانات و انسان همه متنوع متلون یکی انسان سیاهه یکی سفیده یکی زردپوسته یکی سرخپوسته بعد حیوانات هم چنین. هر یکی یک رنگ دارد گلها کوها هر یکی یک رنگ دارد الله می فرماید همه اینها دلیل هستند دلیل هستند بر اینکه که خداوندی هست که اینها را متنوع آفریده و ایلی اگر طبیعت می بود طبیعت همیش طبیعت همه یکی از بعد یک جور می بودند حتی یک ریشه هست دو تا درخت دارت آب یکی زمین یکی ولی, ولی تامش فرق دارت این اللہ هست که این تفاوتها را ایجاد کرده اینجا هم اللہ می فرماید وَاَمْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ از هر نوع بهیج تر و تازه انواع گل، سنبول، درخت تبصیرتم برای فهم شما یعنی تفسیره برای اینکه چشمتون را باز کنید و ذکره و اینها پند هستند هم چشمتون را باز کنید هم قلبتون بشنود لکل عبد منیب برای هر بنده ای که در وجودش انابت است در وجودش حق طلبی است بعضی بندگان هستند در وجودشون تعصب است اناد است اونها نمیفهمند بندگانی که در وجودشون چی باشد انابت و حق طلبی باشد خب این یک دلیل، دلیل دیگر و من السماه ما آم و ما نازل کردیم از آسمان آب مبارک نازل کردیم فا انبت جنات ما رویان به وسیله این آب باقاطی رویان دیم و حب الحصید و اون دانه کی اون دانه انواع دانه ها وقتی که باران می بارد و این دیمه ها بزرگ می شوند بلند می شوان اون وقت همیش حبوبات و دانه ها هست که درو می شوان و مردم ها را حاصل می کنند و النخل باسقات لها و همچنین نخل خورما که باسقات قد بلند هستند خیلی قدشون بالا هست طولانی هستند لها طلع نضید برای انها, برای انها خوشه های هست که تح بتح هست سر هم هست خوشه خرما را دیدید چطور زیبا چیده شده و روی هم انباشته شده و ته بته قرار گرفته شده الله می این زیبایی را و این ترتیب زیبا را ما ایجاد کردید اینها همه برای چی هست رزق للعباد اینها همه برای رزق بندگان برای اینکه بندگان استفاده کنن و احیینا بهی بلدتم میتا و ما به وسیله این زنده کردیم شهر مردهی را به وسیله همین ها ما زنده کردیم چی؟ شهر مردهی را شهر مرده قبلا این زمین مرده بود اثری از سبزی نبود اما الان که باران آمد اثاری یک چمن سبزی و یک فرش سبزی پان شد که این زمین مرده را زنده کرد الله الله می فرمه کذالک خروج همونطور که از دل زمین این سبزی ها خارج شدن ای انسان یک روز خروج شما هم همچنین این جمله معترضه هست برای اثبات قیامت و موضوع محوری سوره هم همیند کذالک الخروج یعنی خروج شما از قبر این, این گونه خواهد بود همونطور که دیدی مشاهده کردی چطور از زمین خشک و سیاه سوخته چی بیرون آمد شکوفه بیرون آمد سبزی بیرون آمد بوته بیرون آمد خروج شما هم همجینی خواهد بود کذبت از اینجا خداوند تخویف به هم میفرماید بیم میدهد، اون بندگانی را که تکذیب میکنن این آیات خدا را خدا میفرماید ببینید پیشینیان تکذیب کردند انکار کردند هم توحید را انکار کرده هم قیامت را عاقبتشون چی شد کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود تکذیب کردن قبل از قبل از قریش مکه قوم نوح تکذیب کرد اصحاب الرس اصحاب چا تکذیب کردند و سمود قوم سمود تکذیب کرد و عاد قوم عاد تکذیب کرد و فرعون قوم فرعون تکذیب کرد و اخوان لوط برادران لوط تکذیب کردن یعنی قوم لوت و اصحاب الایکه اصحاب ایکه یعنی قوم شعیب تکذیب کرد و قوم تبع قوم تبع تکذیب کرد همین قوم را خدا نام برد بعضی از اینها برای ما معروف هستن بعضی ها ناشنا قوم نوح را که خداوند ذکر فرموده پیامبر خدا نوح هم معروف هستن اما اصحاب الرس، اصحاب چا کدوم چا خدا نفرموده این واژه و این کلمه دو جا در قرآن آمده یکی اینجا یکی در سوره فرقان بیشتر از این ذک نشده اینها کیا هستند اقوال زیادی درباره اینهاست بعضی میگویند که اینها قومی بودن روی چاهی بر کنار چاهی آباد بودن پیغمبری به نام حضرت حنزله بن صفوان اونها هستند بعضی میگن نه اینها از کنم که رس میگوین دیواره چاه کهنه را اینها بقایای قوم سمود هستند قوم صالح هستند بعد از اینکه خداوند قوم سمود را هلاک کرد حضرت صالح با یک جمعیتی که مسلمان شده بودند اینها نجات یافتند اینها رفتند از اونجا رفتند و در منطقه دیگر از یمن یک جای یک چاهی بود چای کهنه ای بود اونجا را به عنوان سکونت اختیار کردم و اونجا زندگی کردم سالها گذشت حضرت صالح فوت کرد و بعدن این قوم دوباره گرفتار شرک و خرافات شد پیغمبر زمانشون گفتند و اونها حرف گوش نکردن خدا عذابشون داد بعضی میگفتن اون قوم مراد است والله علم ما قبلا قاعده کردیم ابه ما ابهمه الله چیزی که خدا مبهم گذاشته شما همین طور مبهم بگذارید قوم عاد معروف است قوم فرعون معروف است قوم لوط معروف است اصحاب الایک قوم شعيب هست. ایکا به معنای جنگل امبو کذب اصحاب الایکت المرسلین اذ قال لهم شعيب الا تتقون و قوم تبعهم تبعه یری که خدمت شما عرض کردم این قوم در یمن بود و پدر بزرگشان ابو کرب یمانی بود که به رسول الله صلی الله علیه وسلم همون زمان وقتی از یهودی‌ها شنید که پیغمبری مبعوث میشه همون زمان ایمان آورد به اولادش توصیه کرد هر وقتی پیغمبر آمد بهش ایمان بیارید خودش فوت کرد ما بعدن قومش نافرمانی کردند عذاب خدا آمد لذا الله میفرماید همه اینها تکذیب کردند توحید را تکذیب کردند قیامت را تکذیب کردند اکثرا مشرکان هم توحید را انکار میکنند هم قیامت را الله می فرمائے کل کذب الرسول همین ها رسول ما و پیغمبران ما تکذیب کردن فحق وعید فحق وعید یعنی عذاب ثابت شد حق یعنی سبتا محقق شد به وقوع پیوست اون وعید خدا اون عذابی که خدا از ابیم داده بود اون به وقوع پیوست لذا الله می هر کسی که تکذیب کند انجام و عاقبتش همین خواه بود افعینا بالخلق الاول اینجا بازم سرزنش هست خدا میفرماید که شما میگید ما دوباره شما را زنده نمی کنیم مگر با پیدایش اول ما خسته شدیم خدا خسته نمی شه افعینا آیا ما را خسته کرد خلق اول خسته شدیم با خلق اول بل هم فی لبس من خلق جدید بلکه واقعیت اینه که این مردم این مشرکان در فی لبسین در شک هستند لبس یعنی التباس خلط من خلق جدید در بار پیدایش جدید اینها در شک هستند حال خداوند من دلائل, دلائل را ذکر فرمود که خلق جدید حتما هست بعث بعد الموت حتما هست زنده شدن بعد از مرگ حتما هست اما وقتی که زنده بشه انسانها چه خبر است خداوند اینجا تخویف اخروی بیان می‌فرماد در رکوع دوم تخویف اخروی هست که اونجا وقتی که خداوند انسانها را پیدا بکند چه رفتاری چه برخوردی با انسانها میشه به خصوص با مجرمان اولا خداوند می‌فرماید ما از همه به اسطلاح مردم امروز جیکی مردم خبر داریم چی کردند چی خوردند چی عقیده داشتند چه مرامی داشتند چه رویشی چی منیشی ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه همانا ما آفریدیم انسان را وما می دانیم انبیان علم است وما می میدانیم ما توسوس به نفسه آنچه که نفسش حتی وسوسه می کند حتی وسوسه نفس را اون تخیلی که در درون نفس میاد اون را هم می دانیم و نحن من حبل الورید ما نزدیکتر به بین انسان من حبل الورید از شهر رگش به با اعتبار علم هیچ چیزی از شهرک انسان به انسان نزدیکتر نمیتونه باشه اما علم خدا از هینم بهت نزدیک تره. و بعد باوجودی که خدا خبر داره از وسوسه خبر داره از شهرک انسان خبر داره اما برای انسان یک نظم خاصی خداوند ایجاد کرده دو تا فرشته که یکی جانب راست هست یکی جانب چپ انسان تعیین کرده که این فرشته ها اعمال انسان را ثبت و ثبت می کنند. فرشته یمین و راس اعمال نیک را، فرشته چپ اعمال بد را. و حتی سبحان الله، وقتی که انسان در تشریح همین می اون حدیث که وقتی انسان نیکی می خواد، انسان وقتی که اراده میکنه نیکی انجام بده، کاری نیکی انجام بده، فوراً همین که اراده میکنه یک عجر می می نویسد. وقتی که بعدا توفیقی پیدا نشود که اون نیکی را انجام بده به خاطر همون اراده نیکش اجر براش می ماند. بعد وقتی که توفیق پیدا میکنه این کار نیک را انجام بده بعد ده تا براش ده برابر براش نوشته میشه. و وقتی که انسان کار بدی میخواد بکنه اون فرشته چپ میخواد بنویسه این فرشته راست بهش میگه نه ننویس شاید منصرف شد فعلا اراده کرده اون نمی نویسه اون نمی نویسه اگر یه وقتی منصرف شد گفت نمیکنم، اون فرشته نیکی برش چون که میخواد سیعه بکنه کار بدی بکنه اون فرشته جلویش را گرفت که تو ننویس اما وقتی که منصرف شد این فرشت خودش براش ایک حسنه نوشت فرشتی دست راست و اگر مرتکب سیئش شد بعد بهش میگه همون یک بدیرا براش بنویس خدا چقدر رحمان هست لذا الله میفرماید: و لقد خلقنا الانسانا ونعلم ما توسوز به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما نز نزدك ترستم أز شاهرك إذ يتلقى المطلقيان بنسي أعمال. إنسان هم أعمالش تحت نظم خاصي خاصهاس اقوالش هم تحت یک نظم خاصی هست. اید یه تلق وقتی که دریافت می کنند دوتا فرشته دریافت کنند ده عن الیمین و عن الشمال قعید از جانب راست و از جانب چپ که اینها نشسته هستند یعنی اینها منتظر هستند که انسان چه عملی انجام میده. الاعمالش را منویسن، اقوالش را هم منویسن، ما يَلْفِذُ من قَوْلٍ، هیچ قَوْلِ را نمی اندازد هیچ سخنی را الزبانش بیرون نمی کند، إِلَّا لَدَيْهِ و عَتِيدٌ، مگر نزد او هست، یک فرشته که مراقب هست، عتید آماده باش هست، فرشته که هم مراقب هست و هم آماده باش، تا اینکه الفاظی از دهانش بیروم میکنه. الان بستگی داره که این لفظ چیه؟ اگر لفظ معروفه یا امر به معروفه یا اخلاق خوبه فورا اون فرشته منویسه. اما این لفظ اگر دشنام هست، اگر دل شکستنی هست، اگر غیبتی هست، اون فرشته دیگری منویسد. لذا یک فرشته هم موازب هست و هم آماده باش هست. خلاصه این مرحله از حیات می گزارد. تا اینکه می سکرت الموت و جاعت سکرت الموت آمد بیهوشی مرگ مرگ قبل از خودش بیهوشی در انسان اول از حال میره بعدن می میره بالحق حقیقتن آمد واقعیتن آمد لذا الان به انسان گفته میشه از طرف خدا از طرف فرشتگان ذالک ما کنت منه تحید ای انسان این مرگ آن چیزی هست که کنت منه بودی از این تحید فرار می کردی، یادت هست همیشه فرار می کردی، تا مریض میشودی دکتر میرفتی مشهد میرفتی تهران میرفتی لندن میرفتی تا اینکه از مرگ فرار بکنی الان آمد مرگ بسراغت و نفقه فی السور این دیگه وقتی که انسان می میرد و می رود مرحله بعد سور دمیده میشه سور دمیده میشه مراد از دمیدن سور نفخه ثانیه است و نوفخ فی سور، سور دمیده میشه ذالک یوم الوعید گفته میشه ای انسان ها این روز روز وعید است این روز اون روزی است که خدا شما را از این روز می ترساند روز وعید فرا رسید لذا الله می فرماید و كل کل نفس معها سائق و شهید هر نفسی می آید هر انسانی می آید در میدان محشر معها سائق و شهید همراه این نفس دوتا فرشته هستند یکی سائق یکی شهید سائق کسی که او را سوق می ده و شهید کسی که گواه هست اما بعضی گفتند سائق و شهید سائق ملک الحسنات هست شهید ملک السيئات هست فرشته ای که حسنات را مینوشت اون به عنوان سائق میشه و راهنماییش میکنه و اون یکی دیگه ملک السيئات که شاهد از بربدی او هم با او هست لذا اینجا تفصیل در انسان بد است، انسان مجرم است. الله می فرماید، به این انسان گفته میشه، لقد کنت فی غفلت من هذا، همانا تو بودی ای انسان در غفلت از این روز، من هذا، از این روز در غفلت بودی، فراموش بودی، فکشفنا عنک غطاک، ما دور میکنیم از تو پرده چشمت را، اون پرده غفلتی که بر چشمت بود واقعیت را در دنیا نمی دیدی اون را دور می کنیم فبسارو کل یوم حدید چشمان تو امروز تیز بینه تیز بینه خوب می بینه همه جا را می بینه واقعیت ها را می بینیم حال انسان دو تا قرین داره ببین در این دنیا هر دوی ما هر یکی از ما دو تا قرین داریم قرین یعنی همدم همراه کسی که همیشه با ما همراه است یکی از این دو تا قرین فرشته است همین دو تا فرشته قرینند فرشته است که با همراه است و با هر انسانی یک قرین دیگه هست که این قرین از شیاطین است همیشه تو پوست آدم هست. سعی میکن انسان را به کار خلاف بکشه به منکر بکشه به گناه بکشه اون روز هر دو تا قرین میایان یک قرینی میاد فرشته و در مجرم شهادت میده میگه خدایا این بیچاره این بدبخت در دنیا این همه بد کرد این همه غفلت کرد این هم پروندش حازمالده ی عتید این پرونده پیشون آماده هست پرونده بسته شده همه چیز سبت و زبت نوشته شده چی کرد و در دنیا چیگونه گذراند اون قرین دیگر اون همراه دیگر که شیطان بوده و انسان را گمراه می کرده او الان برای خودش می درسه که این انسان محاکمه می شه و من مقصر نکنند که من گمراهش کردم او اعلام می کنه که بار اله من این را گمراه نکردم خودش گمراه بود با من کار داشته نباش خدا من جواب هر دو میده، دقت بفرمایید. به انسان گفته میشه لقد کنت فی غفلت من هذا همانا در غفلت بودی ای انسان من هذا از این روز یا از این اعمال نامه چون نامه اعمال و پرونده بهش داده میشه بعضی میگه من هذا از این پرونده بعضی میگه من هذا از این قیامت فکشفنا ها فکشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حدید اون پرده غفلت را ما دور میکنیم چشمان تو امروز تیزبین است و قال قرینه هذا ما لدي عتید. قرینش میگه اون همدمش که فرشته بوده میگه هذا ما لدي عتید. این اون چیزی است که نزد من آماده هست، من آماده کردم پروندهش لذا وقتی می‌بینم بی پروردگار همیشه جور می‌، همیشه گناهی، همیشه کفر و شرک دستور سادر میشه. القيا في جهنم كُلَّ كفارِن عنيد بيان دازيد در جهنم هر انسان ناسپاس را و هر انسانی معاند و متعصب را انسانی که روی تعصب و زد کلام خدا را باور نکرد و قبول نکرد و ناشاکری و ناسپاسی کرد تو جهنم بندازید القیه سیغه تثنیه هست گشتی بعضی میگه القیه برای تکرار است بمعنی القیهن به همون قرین گفته میشه تو حتما بیانداز اما بیشتر مفسران میگه اینجا دوتا فرشته هستند القیه تثنیه هست و شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید در سوره رحمان خداوند فرموده يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواس والاقدام مجرمان اونجا با سیما و علائم ظاهری شناخته می شوند اونها را میگیرند به نواسی و الاقدام هم ناسی موهای پیشانیشون را میگیرند یک فرشته به اونجا میگیرد یک فرشته دیگه پاهایش را میگیرد و این را دو نفری پرت میکنن وسط جهنم پس القیا به هر دو فرشته گفته میشه که القیا شما دو تا بیندازید در جهنم هر انسان ناسپاس و هر انسان متعصب و معاند این انسان ناسپاس و متعصب و معاند جرمش چی بوده؟ جرم مناعیل من للخیر یعنی مانع خیر بوده جلوگیر خیر بوده هر جا خیری بود اونجا جلوی خیر را می گرفت هر جا که مردم کار خوبی می درش را تخته می کرد می بست نمی گذاشت مردم نماز بخوانند نمی گذاشت مردم تعلیم قرآن ببینند نمی گذاشت مردم تبلیغ بکنند نمی گذاشت بقیه معروفات انجام بشه این جلوی خیر را می گرفت معتدن که متجاوز بود و مریب خودش تو شک سرگردان بود لذا این نوع انسان شکاک را متجاوز را منع خیر را بی اندازی تو جهنم دیگه از اوصافش چندین وصف براش بیان شده شش وصف حد دقل بیان شده یکی كفار دو ضم عنيث سفوم مناعي لال خير چارم معتاد پنجم مريب ششم الذي جعل ما الله الهان آخر ششم يعني یعنی مشرك بود این مناعي خير شيوط مشرک بود. اون انسانی که قرار داد با خدا الهان آخر معبودان دیگری را الله می‌فرماد، فألقیاهو في العذاب الشديد. بیاندازید این انسان را در عذاب شدید بیاندازید. خب الان وقتی که این را در عذاب شدید می‌دازند، اون قرینش که شیطان بوده، اون همدمش، اون تنش می‌لرزه. اومی خاط که خودش را از این جریان بیرون بکشه قال قرينه ربنا ما اتغيتوه قرين و هم ده مش میگوید بار الها من این را گمراه نکردم و کان كان في ضلال بعيد اما این انسان خود در گمراهی بدور از حق بود الله می فرماید قال لا تختصموا پیش من در محضر من در گیر نشید با هم دیگه بحث نکنید و قد قدمتو الیکم بالوعید هر دوی شما را عذاب میدم چرا؟ چونکه من در دنیا وعید وعیدم را پیشا پیش گفتم تهدیدم را اعلام کردم اون وعید خدا چی بود که در دنیا اعلام کرده؟ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ من الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعين. من جهنم را از جن و انس از تمام شیاطین جنی و انسی پر می کنم لذا خدا می من قبلا شما بیم داده بودم ما یبدل القول لدی اون سخن و قولی که من گفتم همون سخن چی بود؟ القیه في بعضی گفتن الفلام عهدی هست اینکه گفتم گفتم القیه بیاندازید این قول دیگه قابل تغییر نیست بیاندازید دیگه ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید من پروردگار نیستم ظلم کننده برای بندگانم بلکه من در رابطه با بندگانم کمال عدالت را اجرا می کنم اما این بندگان هستن که بر خودشان یوم نقول لجهنم هل امتلعت و تقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعذون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجا بقلب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود در آیات اول این سوره مبارکه دلائلی را مبنی بر اثبات قیامت و اثبات زنده شدن بعد از مرگ خاندیم در رکوی اول بود و در رکوی دوم تخویف آغاز شد تخویف اخروی که در این تخویف اخروی احوال یک مجرم در قیامت و شرائط سختی که برای یک مجرم در قیامت میاد، اون احوال را خاندیم و در تتمی اون احوال در پایان اون احوال می خانیم یوم نقول لجهنم حلم تلعت این تخویف اخروی هست بعد از اینکه مجرمان را گناهکاران را کفار را مشرکین را به جهنم برند وارد می کنند الله عز و جل ما از جهنم می و به جهنم گویم یوم نقول لجهنم حلم تلعته باوجودی که اللہ تعالی علم دارد الله می داند اللہ می فرماید آیا پر شدی داشته باشید که جهنم که میلیونها ها و میلیاردها ها انسان واردش میشه شما تصور بکنید جمعیت کفار را جمعیت مشرکان را جمعیت جنایتکاران را نسبت به اهلی ایمان خیلی بیشترند از اول تا آخر امروز فقط جمعیتشون چندین میلیارد هست از اول تا آخر از خاتم از آدم تا خاتم انسانها آخرین انسان میلیاردهای میلیارد انسان اینها همه تو جهنم انداخته میشوند، اما جهنم هنوز عتش دارد هنوز طلب دارد خداوند میفرماید ما به جهنم گویم آیا پر شدی و تقول هل من مزید هل استفام طلب هست یعنی بیشتر از این میشه مطالبه بیشتر از این میخوام معناش اینه که جهنم در اون روز بسیار عصبانی هست بسیار خشمگین هست مثل اینکه یک انسانی که خیلی گرست نباشه چند روزی که آب و نان ندیده غذا نخورده شما یک صفری پر از غذا جلوش میذارید باوجودی که یک ظرفو رو کفایت میکنه ولی او احساس میکنه اینا خیلی کمه با چه ولعی میخورد با طلبی میخورد چقدر وحشیانه میخورد وقتی که انسان خیلی مشکل داشته باشه بس جهنم همین وضعیت را داره از بس که بر مجرمان عصبانی هست و از بس که خشمگین هست او می خورد او می جوشد و مجرمین را میبلعد و به خدای اززوجل میگه حلم مزید آیا بیشتر از این هست در حدیث شریف می آید که این ولع جهنم را این حرسش عتش جهنم را گرسنگی جهنم را هیچ چیزی نمیتونه تونه کنه کند و بپایان برساند. مگر اینکه خدای از و پای مبارک و ساق مبارک را انگونه که لائق بشعنش هست در حدیث آمده از متشابهات است، او را میزند و جهنم سکون می گیرد آرامش می گیرد و بعد از اون حالت عادی پیدا می کند پس کسانی که جنایتکارند کسانی که با خدا بندگان را و غیر بندگان خدا را شریک می گیرند کسانی که نسبت به خدا کفر می کنند اینها چنان مبغوظ هستند که حمگان بر اونها عصبانیان، بر اونها خشمگیند من جمله جهنم و ازرفت الجنت للمتقین غیر بعید تا اینجا تخویف بود و تا اینجا بیم دادن و ترسوندن بود، از این به بعد بشارت هست، خوشخبری هست، مجده هست. اما این مجده برای چه کسانی هست؟ عزیزان من این صفات را نگاه کنید، این صفات دارندگان این صفات کیا هستند؟ اولین صفت برای کسی که میخواد وارد بهشت بشه، از اول تاخیر قرآن هر جا بررسی بکنید، اهل تقوا هستند. خدا به ما تقوی نصیب بفرماید و ما را با لباس تقوی ملبس بگرداند خدا ترس اینجا صفات دیگری برای متقین بیان شده تو این آیات متقین را خدا تعالی بیشتر معرفی کرده متقین را بیشتر توضیح داده اینها هستن که وارد بهشت می الله اللہ می و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید نزدیک قرار داده میشه بهشت برای متقیان مستحقین بهشت غیر بعید یعنی دور نا ازلافا غیر بعید نزدیکیه که دور نیست روز قیامت وقتی که انسان از قبر حشر میشه در همین میدان قرار میگیرد همه چیز پرده ها برداشته میشه هجاب ها برداشته میشه جهنم هم نمایان میشه، جنت هم نمایان میشه، بهشت برای متقیان نزدیک میشه، جهنم برای مجرمان نزدیک میشه، لذا الله می فرماید، و ازلفت الجنت للمتقین، نزدیک میشود بهشت برای متقیان غیر بعید یعنی ازلافا غیر بعید چنان نزدیکیه که دور نخواهد بود. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، گفت میشه این آن, چیزی هست این آن چیزی بود که تو آدون شما وعدد آده می شوید یا در دنیا وعدد آده می شدید لکل اواب حفیظ بحیش مالی کیه مالی هر اوواب و هر حفیظ اوواب معنیش هست بکسرت رجوع کننده حفیظ معنیش هست حفاظت کننده حال اگر ما از نظر لغوی نگاه بکنیم اواب کسی که زیاد به خدا رجوع می کند بار بار رب را یاد می کند بار بار رب را ذکر می کند و حفاظت می کند حدود خدا را حفاظت می کند گناه نمی کند معصیت نمی کند اما امام مجاهد رحمه الله که یکی از ائمه تفسیر هست ایشون از شاگرد خودش پرسید و به شاگرد خودش گفت قال مجاهد الا انبئك بالاواب الحفيظ من بشما بگم که اواب حفیظ کیه اون شاگردی گفت بله شیخ بزرگوار اواب حفیظ کیه فرمود هو الرجل يذكر ذنبه اذا خلا فيستغفر الله تعالى منها اون مردی هست اون انسانی هست اون مسلمانی هست وقتی تنها میشه وقتی خلوت می کند وقتی که با پروردگار راز و نیاز میکنه گناهش را یادآوری میکند فلان وقت این گناه را کردم این اشتباه را کردم این خلاف را گفتم این غیبت اون کوتاهی گناهانش را یاد میکند بعدن استغفار میخواد از الله مغفرت میخواد خدایا من اشتباه کردم، کردم، من ببخش و بالخصوص انسان وقتی که تنایی خدا را یاد می کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم هفت نفر را ذکر کردند که در روز قیامت اینها زیر سایه عرش پروردگار جای دارند و از این هفت نفر این حدیث را شما زیاد شنیدید از این هفت نفر فرمودن رجلون ذکر الله خالیا ففاضت عینا اون مردی که خدا را در تنهایی یاد می کند و چشمانش اشکبار میشه، شه سرازیر میشه. لذا انسان وقتی که با معبود خودش با مولای مهربان خودش خلوت میکند کند و اونجا با اشتباهات خودش اعتراف می کند پیش خدا و با خدایش سخن می گوید که خدای من اشتباه کردم الان پشیمانم و عشق می ریزد و استغفار می کند این انسان مستحق بهشت است این انسان اواب حفیظ است این کسی است که بار بار به خدا رجوع می کند و حدود خدا را و حریم را این حفاظت می کند رعایت می کند لذا اواب حفیظ را خود قرآن در ادامه معرفی می کند آواب حفیز کی هست من خشی الرحمان بالغیب کسی که از رحمان می ترسد کسی که از رحمان می ترسد ندیده می ترسد بالغیب غایبانه ندیده می ترسد وجاء بقلب منيب وَإِنْ انسان در مهزر الرحمن حاضر ميشه بقلبك در ان قلب انابت هس در ان قلب رجوع هس ان قلبش بطرف اللہ عز و جل طلب داره ان قلبش خدا رمی خاته این هس اواب حفیظ این هس متقی این هس ان انسانی که مستحق بهشت است به این انسان چی گفته میشه و دخولوها بسلام ای انسان وارد این بهشت رو شو همرا با سلامتی همرا با سلامتی یعنی هیچ قطری تو تحدید تهدید کند تو از این بهشت اخراج نمیشی ولیک یوم الخلود این روز روز خلود هست روز همیشگی است اینها در بهشت چه نعمت های را خواهند داشت لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله میفرماید برای این اهل بهشت آنچه که بخواهند در اون بهشت خواهد بود چی که مطالبه بکنند، چی که تمنا داشته باشند، انسان هرچی که میخواهد برشت محییه میشه، از مأکولات، از مشروبات، از ملبوسات، از فواکه و ها، از انواع خوراکی ها، از انواع نوشیدنی ها، لباس ها، زیبایی ها، اما یک چیزی به ذهن انسان نمیاد، یک چیزی که با من ترین چیز هست اون به ذهن انسان نمیاد الله اون را میگه ولده مزید اون چیزی که انسان میخواد برش هست اما پیش ما چیزی اضافه بران است اضافه بر سازمان است بیشتر از اون چیزی که اون انسان فکرش را میکند هست اون چیه اهل تفسیر نوشتند تفسیر این ولده مزید دیدار پروردگار است. ملاقات رب هست که وقتی که اهل بهشت وارد بهشت میشن همه چیز را خدا برایشون مهیا کرده ساختمانه باغ بستانه حور لباسه میگه ای بندگان من چیز همه چیز فراهم کمبودی نیست چیزی باقی نمانده. اونا هر طرف نگاه میکنن همه چیز فراوانه میگه رب هیچ چیز باقی نمانده. پروردگار میفرماد یک چیزی باقی مانده من میگم یک چیزی باقی مانده. می پرسند اون یا رب اون چیه الله تعالی حجاب را بر می دارد پرده را بر می دارد اون چیزی که حائل بین پروردگار و بین بندگان هست اون الله تعالی بر می دارد و انسان ها وقتی که تماشا می کنن وجه رب را و ذات پروردگار را الله همه محو می همه دیوانه پروردگار می همه حالتشون عوض میشه چنان خوشی چنان لذتی چنان سرور و شادمانی به انسان دست میده که انسان ارگز تصور و خیالش را نداشته و ندارد اون وقت اهل بهشت میگه خدای ما دیگه ہیچی نمی خواهمی یکی را میخواهم همیشه باشد اما الله میفرماید که نه. این در ساعاتش در وقتش روزهای جمعه فقط ملاقات پروردگار میشه بحشتی برای اون لحظه لحظه شماری میکنند لذا الله می فرماید ولدینا مزید پیش شما اضافه از این هست اون چیزی که شما مطالبه کردید شما دارید بیشتر از این من به شما عطا کنم الله عزوجل از این نعمت و به خصوص از دیدار خودش همه ما را محروم نگرداند و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشه بعد از این تخویف اخروی و تبشیر اخروی هم از عذاب آخرت خداوند بیم دادند و هم به نعمت های آخرت الله مجد دادند و خوش خبری دادند الله عز وجل تخویف دنیوی بیان می فرمد مجرمان چون فکر می کردند که آخرتی نیست زیاد نمی ترسیدند اعتقادی به آخرت نداشتند الله تعالی می فرمد در دنیا هم گرفت است شما در قرنهای گذشته نگاه کنید های گذشته نگاه کنید چقدر انسان ها بودند اونها از نظر قوت از شما قوی تر بودند اونها مثل شما شهرها را تسخیر می بلاد را تسخیر می بلاد را تحت سیطره خودشون در می آوردند الان هستند ابل قدرت هر شهری را که بخواهند زود با بمب با خاک یکسانش میکنند، تصرفش میکنند الله میفرماید هم چینین انسان های نیرومند قبل از شما بود ولی اونها را من هلاک کردم نابود کردم شما هم به عذاب خدا به گرفت خدا یک روزی گرفتار میشید. و کم اهلکنا قبلهم من قرن چقدر انسانها را ما هلاک کردیم قبل از اینها از قرون متمادی از قرون گزشتی هم اشد و منهم بطشا انها قوی تر بودن از اینها از نظر قوت از نظر نیرو فنقبو فی البلاد با قدرت اونها داخل شدن در شهرها نقب سوراخ را میگند یعنی اونها با قدرت تمام وارد شهر شدن و شهر تابع خود قرار دادن و مسخر کردن هل من محیس آیا وقتی که عذاب ما آمد برای اون انسانها آیا مفر بود من محیس خلاص مفر آیا جا را جا راه فرار بود نبود خدا همیشون را حلاک کرد هیچ کسی از اونها باقی نمان حال الله عزوجل می میفرماید حلاکت اونها و نابودی اونها باید برای شما پند باشد برای شما موعظه باشد برای شما تذکر باشد اما برای چه کسی تذکر است؟ اون انسانی که قلب دارد یعنی دلی دارد که دلش گوش دارد به تعبیر ما گوشت با گوش دل گوش می کند اون انسانی که خوب کلام خدا را توجه می کند او تذکر می بیند، او پند می‌گیرد، بقیه پند نمی‌گیرند. گیرد، که اعتقاد ندارند، این نفی ذالک لذکر همانا در این پندی هست، در این معزه، پندی هست، تذکری هست لمن کان له قلب برای اون انسانی که اون قلب داره یعنی اون عقل داره اون درک داره او القسم معه و هو شهید یا یعنی اینکه ان این انسان گوش میکنه گوشش را میدازه یعنی گوش میکنه و هو شهید یعنی حاضر ماست یعنی دلش هم متوجه یعنی تمام بصورت تمام و کمال توجه میکند اون انسان بهره میگیرد اون انسان از این آیات متذکر میشه اشاره به این هست که اگر ما این آیات را سطحی نگاه کنیم این آیت را سرسری بگذریم این آیات را عمیقا نگاه نکنیم تدبر نکنیم ما پند نمیگیریم از این آیات کسی از این آیات پند میگیرد که تدبر بکند، با کوش دل گوش کند، اون حواس شش دنگ به اصطلاح مردم ما جمع باشد و خوب توجه کند، اون این آیات را متوجه میشه و از این آیات باید میگیرد. و خلقنا السماوات والارد، بعد از این پروردگار دلیل دیگری که این دلیل عقلی هست بر قدرت خودش، و برای ثبوت قیامت بیان می فرماید. خدا می فرماید ببینید این آسمان زمین اون که در زمین است از خزائن از معادن از کوها از آبها همه و همه اینا رو ما در ظرف شش روز بی... پیدا کردیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ هَمَانَا مَا آفَرِيدِهِمْ آسمان هارا وزمین را و بین انها در مقدار ششروز قبلا خوندیم که این تقسیمش به صورت دروز زمین دروز آسمان دروز بعد اصلاح زمین و اون چیزی که برای اهل زمین خدا اینجا ذخیره کرده تا قیامت هر چی انسان بی نه ترسه هیچ کسی از جمعیت هرچی انسان بیاد خدا برای اون تو زمین زخایری دارد هرچی جمعیت بیشتر میشه انکشافات هم بیشتر میشه کشفیات هم بیشتر میشه چیزهای ارزشمن معدنهای گرانبها ها و ارزاق و خوراکی های بیشتری خداوند تعالی انایت میکند لذا الله میفرماید ما در ظرف شش روز اینها را آفین شش روز تا خداوند تدریج را یاد میده خداوند عزوجل میخواد نشان بده که در دنیا هر همه چیز آنی نیست لحظهی نیست بلکه هر چیز روی روال و منوالش هست و ما مستنام لغوب به ما هیچ نو خستگی نرسید یعنی خدا خسته نشد که بگیم کار را تعطیل کرد بعضی از مفسرین نوشتن این و ما مصنا من لغوب رد یهود است چون یهودی ها تورات را دستکاری کردن تو تورات همین آیه هست اما تو تورات اینطور نوشته شده که خداوند می فرماید خداوند از زوجل زمین و آسمان را در ظرف شش روز پیدا کرد و روز هفتم استراحت کرد شش روز زمین و آسمان را پیدا کرد و روز هفتم استراحت کرد استراحت کسی می که خسته بشه استراحت نوعی عجز هست نوعی زعف است خدای عزوجل در رد انها می فرماید و مسنا من لغوب به ما هیچ خستگی دست ندارد یعنی خدا نیاز به استراحت ندارد کل یوم هوا فیشان هر روزی هر لحظهی هر ساعتی خدا مشغوله یکی میده از یکی میگیره یکی را شفا میده یکی را مریض میکنه یکی را به دنیا میاره یکی را از دنیا میبره هر لحظه خدا تعالی مشغول بندگان خودش هست لذا و ما مسنا لغوب به ما هیچ نوع خستگی نرسید خب این آیات را که شما ملاحظه فرمودید در این آیات هم تخویف اخروی بود از عذاب آخرت و جهنم را خداوند چگونه به تصویر کشید هم تخویف دنیاوی بود این عذاب های اقوام گذشته را خداوند اشاره فرمود هم بشارت بود هم دلیل اقلی بود خداوند آثار قدرت خودش را بیان کرد این دلایلی که اینجا بیان شد این تخویف و تبشیری که اینجا بیان شد اینا مشرکین را تکان نمیداد. هر چی که به آنها گفته می شد اینها ایمان نمی آوردن کوچکترین تمایلی به ایمان نشان نمیدادند رسول الله صلی الله علیه و از این موضوع بسیار ناراحت می شد، بسیار پریشان می شد و جوش می زد، حزین بود، غمگین بود، لذا گاهی خدا از آیاتی به تسلی پیامبرش نازل می فرمود فصبر علی ما این از اون آیات تسلی است خداوند تسلی میده پیغمبر خودش را پس تو صبر کن ای حبیب من بر آنچکه آنها میگویند هر یاوگویی میکنند هر تمسخری میکنند هر کفر و شرکی که از زبان اونها صادر میشه صبر کن تحمل کن نگران نباش و خودت را سب تلقين بذ با ان تسبیحاتو حمدو نماز وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يعني چه؟ يعني تسبیح وحمد ربك ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ودر وقت الشباب قبل طلوع شم قبل غروب یعنی چی؟ یعنی صبح و شام صبح و شام کنایز على دوام هست صبح هم تسبیح و حمد خدا را بیان کن شب هم تسبیح و حمد خدا را بیان کن و غروب هم بیان کن قبل از طلوع خورشید قبل از غروب خورشید. بعضی از اهل تفسیر می گویند که تلقین به ذکر است، تلقین به تسبیحات هست، تلقین به حمد و صناع پروردگار هست چونکه چیزی که انسان را تسلی می دهد یاد خدا است. همیشه در وقت مصیبت انسان که خدا را یاد می کند دلش آرام می گیرد دعا می مناجات می نماز می بیشتر آرام می گیرد بعضی می گویند که این تلقین به ذکر و تسبیح و تحمید است. در اوقات مختلف، اما بسیاری از مفسران معتقدند که اینجا خداوند از و اشاره به نماز کرده، نمازها را ذکر کرده. چون در نماز شما دقت بفرمایید غیر از حمد و تسبیح چیزی دیگه هست، نیست، شما وقتی که آغاز میکنی نماز را سبحانك اللهم و تسبیه و حمد میگوید. وقتی که الحمد را شروع میکنی این هم حمد پروردگار است. وقتی که به رکومی رفی سبحان رب الاعلیم تسبیه پروردگار است. وقتی که از رکو بلند میشی ربنا الکل الحمد این حمد پروردگاره. وقتی که به سجده میری سبحان رب الاعلا این تسبیه پروردگاره. وقتی که التهیات میخانی این تسبیه و حمد پروردگار. یعنی همیشه نمازیه. تسبیح حمد دعا هست. پس بعضی گفتند که مراد سبح حمد ربکه نماز هست. چون نماز خلاصه میشه به تسبیح و حمد و قراءت قرآن و دعا و نیاش. پس خدای تعالی اشاره فرموده به نمازها و اینجا اشاره به نمازهای پنجگانه هست. چطور؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع شمس قبل از طلوع خورشید. قبل استلو خورشید چه نمازی هست نماز فجر نماز صبح و قبل غروب قبل از غروب قبل از غروب خورشید نماز عصر است البته قبل از عصر زهر ظهر هم قبل از غروب حساب میشه پس این سه تا نماز شد و من الليل فسبحوا شب هم تسبیح و تحمید بگو شب شامل نماز مغرب و عشا میشه پس پنج نماز را خدای تعالی اینجا جان کرده و ادبار از سجود بعد از سجده ها هم تسبیح و تحمید بود یعنی بعد از سجده ها بعد از نماز ها هم مشغول بازد یعنی چی؟ بعد از نماز ها بعضی گفته اشاره به نوافل است یعنی بعد از نماز های فرض نماز نافله بخوان. ولی بعضی میگویند که و ادبار سجود اشاره به تحجد است بعد از این همه سجده ها نیمه شب هم خدا را یاد کن خب این چیزی است که بیشتر مفسرین مثل تفسیر خازن مثل تفسیر مزهری، تفسیر مدارک و تنزیل همه این تفسیر ها نوشتن که این درباره نمازهای پنجگانه هست و با این توضیحی که بنده عرض کردم اشاره به پنج، نمازهای پنجگانه بود اما شیخ ما رحمه الله شیخ حسین علی ایشون فرماید که این سوره جز اون سوره هایی هست که ابتداعا نازل شد جز اولین سوره های مکی هست نماز که پنج نماز فرض شد در سال پنجم بیست بود اون زمان هنوز نمازها فرض نشده بود البته دو وقت نماز می خاندند صبح نماز می خاندند عصر نماز می خاندند و تهجد هم می خاندند چون سوره مزمل که در تهجد و وجوب تهجد است ابتدا ابتدا فرشد لذا شیخ می فرماید قبل طلوع اشاره به نماز فجره است و قبل الغروب اشاره به نماز عصر است و من الليل اشاره به نماز تهجد است و ادبار سجود اشاره به نوافل است بس ابتدا فقط نماز فجر و عصر بود و نماز تهجد این مربوط به اون زمان هست و استمع یوم یناد من مکان قریب گوش کن روزی که كن ندا می کنن از مکان قریب مراد از ندا کننده اسرافیل است و مراد از ندای این اسرافیل سور اسرافیل است و مکان قریب منش اینه که وقتی که اسرافیل سورش را می چنان صدایش رسا هست صدایش بلند هست که هر یکی از ما میکنه بیخی گوش من داره سور را می زند هر یکی اینطور تصور می کنند. از بس که اون صدا رسا هست اون صدا بلند هست لذا الله می فرماید وستمی گوش کن يوم ينادي المنادي من مكان قريب روزيك ندامي كنن ندا كنن دي يعني اسرافيل از مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق روزی که همه میشنوند سیحرا همه اون فریاد را میشنوند بالحق میشنوند یعنی یقین میشنوند قطعا میشنوند ذالک یوم الخروج اون روز روز خروج هست از قبور انسانها همه از قبرها خارج میشوند الله افرمه این همه بر اساس قدرت ما انجام می گیرد دلیل دیگری عقلی. انا نحن نحیی و نمید و ایلینا المصیر همانا ما ما اینک زنده می ما اینک می می می انسان هارم موت میدهیم دهیم المصیر فقط و فقط مرجع بازگشت بسوی ماس یوم تشقق الارض عنهم صراعا الله عز وجل خروج را و کیفیت خروج را توضیح میده يوم تشقق الارض عنهم صراعا روزی که زمین شکافته میشه از آنها با سرعت یهو زمین شکافته میشه دهن باز میکنه همه میان بیرون ذالک حشرون علینا یسیر این حشری هست، این جمع شدنی هست در اون روز همه در میدان محشر جمع بر برما این آسان است هیچ مشکلی ندارد نحنو اعلم و بما یقولون بازم خدا تسلیمی میده ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگران نباش ما بهتر میدانیم آنچه که اینها میگوین قوم تو مزخره میکنه هرچی میگوین ما بهتر میدانیم وما انت عليهم بجبار نیستی برانها تندخو جبار یعنی چیزی را جبر کنی اونها را با فشار به قبولانی نه بلکه تو ناصح هستی تو مبلغ هستی تو تندخو و مسلط بر اونها نیستی ناصحی مبلغی پس چکار کن فذکر بالقران من خاف وعيد پند بده به وسیل قرآن فریزه رسول پند بده به وسیله قرآن چه کسی را پند بده ببینید از قرآن چه کسانی می توانند پند بگیرند از قرآن چه کسانی متاثر می من یخاف و وعید کسی که از عذاب خدا بترسد یعنی کسی که در دل اون فکر آخرت باشد هم غم آخرت باشد او میترسد، او باور می کند. اما کسی که خوف در دل او نباشد او تذکر پذیر نیست او از قرآن هیچ نو تأثری برای خودش بر نمی الله به همه ما خوف خودش و هم مغم آخرت نصیب بگرداند